دو هفته یه دیگر گذشت ایوانیدیچ دیگر از روی کاناپه برنمی‌خواست از بستر بیزار شده بود و همانطور روی کاناپه میخوابید و همچنان رو به دیوار گردانده پیوسته همان رنج تحلیل ناپذیر را به تنهایی تحمل می‌کرد و پیوسته در تنهایی و همان معماهای ناگشودنی میان یعنی <تصفيق> چه؟ آیا به راستی باید مرد و ندای درونش جواب میداد بله حقیقت است و باید مرد میپرسید ولی آخر این همه رنج برای چیست و ندا جواب میداد دلیلی نیست برای هیچ و همین از همان ابتدای بیماری از وقتی که ایوان الیش بار نزد پزشک رفته بود زندگی درونیاش از دو حالت متضاد که به تناوب به او دست میداد تشکیل میشد یکی ناامیدی و انتظار مرگی حلناک و نامفهوم و دیگری امید و دقتی سخت متمرکز بر مشاهده و تعقیب اعمال اندامهای خود داهی جز کلیه و روده چیزی نمیدید کلیه و رودهای که به سرکشی افتاده بودند و موقتا به وظایف خود عمل نمیکردند و گاهی هیولای مرگی نامفهوم به هرناک که هیچ راه گریزی از پیش آن نبود این دو حالت نفسانی از همان آغاز بیماری به تناوب جایگزین هم می شدند. اما هر قدر که بیماری ادامه می تصور کلیه و روده مشکلتر و مهمتر می و آگاهی به نزدیک شدن مرگ واقعیتر تر می گردید. کافی بود که حال خود را سه ماه پیش از آن به بیاد آورد، آن را با حال امروز خود مقایسه کند و ببیند که چه پیوسته و منظم در سراشی به تباهی پایین می رود تا هر گونه امکان امید از دلش زایر شود. ایواندیش در آخر این دوران تنهایی که پیوسته روی کاناپ افتاده و رو به جانب پشتی آن گردانده بود، تنها در دل شهری شلوغ. تنها میان دوستان و خانواده های فرابان، تنها چنان که تنها تر از آن نه در ته دریا ممکن بود، نه روی زمین. در این تنهایی هلناک فقط در خیال زندگی می کرد و گذشته خود را وامی پیمود. زهرهای زندگی گذشتهش یکی پس از دیگری پیش چشمش مجسم می شود. این نمایش همیشه از زمانهای اخیر شروع می شد و به دوران بسیار دور کودکی می کشید و آنجا باز می ایستاد اگر به یاد کمپوت آلو سیاهی که روز پیشش گذاشته بودن می افتاد خاطره آن آلوی سیاه خام و ای برایش زنده می شد که در کودکی خورده بود و تعم آن و آب فرابانی که دهانش را پر کرده بود انگامی که جز هسته آلو در دهانش نمانده بود و همراه با خاطره طعم آلو یک رشد خاطرات دیگر مثل یاد برادرش و و بازی چایش به ذهنش باز می آمد اینوانی با خود می که نباید به این چیزها فکر کنی زیاد درد ناشند و به امروزش باز می گشت به دکمه پشتی کناپه می دوخت و به چرم آن و به دعوی که بازنش در باره کناپه چرمی کرده بود و بر سر اینکه چرم گران است و کم دوام. دعوا بر سر کاناپه بود اما چرم دیگری را به یاد آورد و دعوای دیگری را وقتی با برادرش کیفه چرمین پدرشان را پاره کرده و مجازات شده بودند و مادرجانشان پنهانی برایشان پیراشکی آورده بود و باز افکار ایوانیریش در زمان کودکی ماند و باز برایش دردناک بود و باز کوشید که این ها را از ذهن خود دور کند و به چیز دیگری بیاندی شد و باز همراه با این رشته خاطرات رشته خاطرات دیگری در ذهنش بیدار شد و آن یاد چگونگی شدت گرفتن و وخیم شدن بیماریش بود اینجا نیز هر قدر به گذشته عقب میرفت دلش را از شور زندگی سرشارتر میافت خوبی های زندگی بیشتر بود و خود زندگی پر ایارتر بود و نیکی و زندگی با هم در با خود می همانطور که درد من مدام شدیدتر می شود، تمام تماهم زندگی هم روز روز زیادتر اتباه تر شده است در گذشتهای بسیار دور در آغاز زندگی هم یک نقطه روشن وجود داشت و بعد از آن به وسط روح به ظلمت پایی می رفم. و پیوسته بر سرعت سقوط هم افزوده می شود. و ایوانیدیش با خود می گفت که این افزایش تاریخی و سرعت با مربع فاصله هم با مرگ نسبت معکوز دارد. و با این فکر تصویر سنگی که با سرعتی فزاینده فرو میافتد در ذهن ایوانیدیش جای گرفت. زندگی یک رشته رنجهایی بود که مدام شدید تر میشد و با سرعت پیوسته فایند به سوی پایانش که عذابی بین هایت بود میشتابید. دارم میفتم. از جام میجست و خود را تکان میداد میخواست مقاومت کند. اما میدانست که مقاومت ممکن نیست و با چشمانی که با وجود خستگی نمی آن چه در پیش رویش بود نگاه نکرد. به پشتی کاراپ دوخته و منتظر می در انتظار پایان این سقوط مهیب، در انتظار ضربه و تلاشی و با خود می گفت مقاومت ممکن نیست اما ای کاش میفهمیدم فهمیدم این چیست اما نمی شود فهمید اگر می شد گفت که من در زندگی به راهی نوایست رفتم مشکل قابل توضیح می بود اما چون زندگی خود را باز می پیمود که سراسر به قاعده و با درستی و شایستگی و احترام گذشته بود می گفت. ولی چطور می توان چون این چیزی را پنداشت چون این چیزی را اصلا نمی شود پذیرفت و پوزخندی بر لبانش ظاهر می شود لبخندی تمس گفتی کسی ممکن بود لبخندش را ببیند و فری آن را بخورد نه هیچ جور نمیشه و تو زیدار. این ازا و مهک شد